از باغ میورند چراغانیت کنند از باغ میورند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشندند صبح ترابرهای تا تنها به این بهانه که بارانیت کنند یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار میورند که زندانیت کنند ای گل گمان مکن به شب جشت میروی شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطهی به تاست که شیطانیت کند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بحانه نیست که قربانیت کند